نه سابقه یه انس داره اینا تراشیدن خودشون چیدی که خودشون با دست خودشون ابراهیم یه با دست خودشون خودت نه تراشید سابقه یه هم نداره بلی بلی. از خودت نمیخوان ما تعبدون من دونهی الا اصما انسمیتوموها اصما انسمیتوموها این به ما تفیام بده اینی که ما میبریم بله. چیلش که خودتون اختلاف کردیم.、خالد. سابقه ای نداره. من. یعنی اینی که شما میپرسی در واقع اون بعلیس، اون بسلاو دعت نیست. یهشش شما بالقوه تون دروغ میکنن. بنابر این کفاره ما که هم فقط همین نماد رو میپرسیدن، این چوب رو میپرسیدن با اعتقاد به این که این چوب یک مخالفش نیست خوددار. در این حالت همون بعلیس. اینها میار. بود فرآسی از همون زمانه تیپلوها وقتها سرگرفتند فنگ فنگ میگشید نگفته شد ما کاملا میگوشتند حالا شما به فهمیدن دخترم گیتافیو ما اینکه کاو منو ال سلام ابراهیم ال سلام بطرعش بود بودند و در فای بوده بودند یا کاو منو ال سلام پانشت ابوذر بودند و سهی بخاری میاد که اینها اوریا بودند تصویر دارستند アイアティケダーバレー、ホデコレーション、マダフォランバイナーヤダウリ。エンナーラディーナタドウナメンドゥンエラーエバドン、アンサーロコ。 アメシャケズや、あざれゼロイ、エンダードィジュエル。や、ファイザラケブフォルフォルインダーバレイケ、アラブフォルシェファイザーラケブフォルケダーボーラーモクリスイン、アラブ。アゲルマン、ボトラビゲンバイン、アイアタロズ、マバイ、ライコラービゲンキタロズ、アゲルマミギンキナブ、ファラスボダン、ファスベンジャタロズメ。 バーザーダーラキブーフォルケーダーブーラーモクレセラーラーハティーアスランナーラティブーナウザイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイブーナイ バーザンダーサウレイジョンゴンキハウライショファーンアイドルインアウリアショファーイマーサンエンドルバーザンダーサウレイジョンゴンキャラメイアウリアメイアベボトウォリアメイシェキベボトンビディウォリアウレイジョウリレイイアウリアメイヤラバザ ما فقط رؤية و ن ك ن يقول ب ا لك ه قلت و ان ل ذ ي ا ت يكون ه ن ا ء أ و ل ي ا ء ب ي ف و ل ولينا من ي آيسة ي ق و سورة زمور ل ل ا ذ اولياء ت خ ذ ن مِنْ دُونِ و أ ما نعبدهم إ لا ل ي ق ر ب و ن إلى ل ل ا هناك الظرفة ل ل رقبول ه قربي افضل من ي ا إِنَّ ا ل ل ه ي ح ك م بَيَنُهُمْ م فِي ا هُمْ فِي ف خ ت ل ء バザンダスウェイバカラミ ر ン。 よしっぽなうんかはうぶら。やな、はむぶららだだだだだだらだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ マンアドルー、イナラファラティア、ダーシュトニバーダンバーマシュマドウィナーソバトミントン。チューマサレマダン、イナスカタドゥナメンドゥラ、イバーダサン、イアナボタサンゴ、メディゼローズ。マンアドルー、メンマイヤドゥメンドゥナラザベルオフューメンザザザベルオフューメンザベルオフューメンザベルオフューメンザベルオフューメンザベルオフューメンザベルオフューメンザベルオフューメンザベルオフューメンザベルオフューメンザベルオフューメンザベルオフューメンザベルオフュメン فَإِذَا حُشْرَ ولكن ن َ ا س َُ ا ُ و ا لَهُمْ ب ِ ن ْ ك َ ان ُ و ا تتعامل مع ه ر الله و ا ولكن َ ا ُ و اصبحت لك َ ان تتعامل مع الله ولكن اصبحت ا ه نهار لك ان ر و تتعامل ض رؤية روز همين آية ك ة ه مع الله ر ت اینا اولیه را نظر و نیاز و صدقه میدارند که برای ما روز خیامت شفارش میکنند در دار روز خیامت اللہ تعالی به انبیاء اولیه خطاب اانتم ادللتم عبادی ها اولا امدل و سبیل این خطاب به بطنه میشود به بندگان خدا به بندگان خاصی اللہ تعالی میشود با سوره سبا آیه هفته و همچنین اونا میگون ما کانو ایانا یعبدون این خاص ما را عبادت نمیکردون ي ولكن <بتن> ي ل م ر ب ي م ك ن ي ا ا ن ب ي ا ء ويامكنا ل ء ي و وقال ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا للذين ا م ن و ا ا ت ب بوسعنا ا نحب ا ل خ ط ا يقولها م ث ل م ا ك س ا ا ل ل ا ص ل ا ة و ا ل س ل ا ب ب ر ر و ز خ ي ا م ت على ترابي س ا ل ه ايا شمار و م ا د ر س ش مبنى ا جمركتي شمار ي بادوكي سامي ي ر بالعالم ن ت ز م ا ن ك ممبودا م ا ن ر براي شماد ع و ت م ي ا د ء بارز ع د مصمممتي ل لنا دار 山崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の س 崎 ا 野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野 ا の野崎の野崎 ا 野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野 ن の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の ا 崎の野崎の野崎 د 野崎の野崎 م ش ر の野 ن の ن ه ا ر 崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の野崎の ل 崎の野崎の野崎 ر 野崎の野 ا 私たち は, は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ا たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ا は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た و は、私たち ا 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ه は、私たちは、私たち、ا たち、ن ا ち、私 アイファンジャーハブ。 اینا یادداشت میزنم بعد رویشان اینشان صوابتم میکنم بعد تفسیر کنم سوره اسراء از آب آب ازشونوشون همیشه دفتر قبلا ثمری من جواب همش شما هم کردم. خود جواب رو هم عزیز گرفت نمگوتنیم همه را قبول کن جواب ولی کن علامت رو برای ما خوش آمد کلام مثلا حالا من برایم جواب آه. این می‌رسه معلومه این عهد ما می‌خواد این عهد پاکتی داریم آیه سوره آرا سوره اسراء آی فنجاو هف فنجاوشید قلد قلذینه زعمتم م ن دونه ف ل ا ي م ل ك و ن كشف ا دور عنكم و ل ا ت ه ب ي ل أ و ل ئ ك ان ل يكون كشف د و ذ ي ن ي د ع و ن ي ب ت غ و ن إ ل ى ر ب ا ل و س يكون كشف دور عنكم الا آیات ترجمه دوستی است. این نه لیل و نه. الها ترجمه آیات است. این سوبد، این سوبد شما باید. الها آلمان شماره. بیمار اهل تلصرا مسیح. بیمار شماره بیچود عیت الله است. نه علوم من هنوز وجود. این عایر، این ترجمه را ثلثی هم نمی‌بینم. ولاکه اللذین یدعون یدعون یابتوان علارب به وسیله. خب، یعنی همین مدوعیشون وسیله را می‌خواید. این یابتوان زمینش رو کیبر می‌گردد. به اون یدعون بر می‌گری. به اون ولاک. به اون ولاک بر می‌گردد. ولاکه کیست؟ نسل هرکشام از سر میکنه؟ اینها کدش وسیله را تبدیل به وسیله؟ از آنیه درن، اینها را میخونند، دنبال وسیله هستن یا نه؟ همین دایی، همین دایی دنبال وسیله است. اشتباهم گرفت، میگه این دایی دنبال وسیله است. رو این آیات هکی بکنه. این باز من این ترجمه رو دیدم. داره نظر رها کنه. داره از کوران سریه، جا کوران سریه. サラミコラジャータウナ、パターやダシャータウナ、イラインアイラマン、ヤプタウナ、アユアカラブ、ネガク、アユアカラブ、ワヤジュナラハマド、ワヤハフナダ、ワヤポタミカラミコラ、サラミコラ、サラミコラ、ダリオサラミコラ。 من الان در خدمت شمه خب حاج آقا فرمود این که、مورد. آیات مربوط به بود هاست ها؟ یک آیات آج آقا بسم الله الرحمن الرحیم ایسا زنده است یا مرده؟ الان زنده اگر یک پشه ای بیاد سراغ ایسا میتنو از خودش این پسر درد کنی یا نه؟ پشه این در عصم ها نیست اگر بره اگر بره あら、あととんじゃがべえ、いさべえ。やあ、よなら、ボールばまだらんさ、スタミナオだ。んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん و ای این کتاب بارزه میاد. این کتاب با کیمین تاموس علمونه. با کوفار دامن پیران بار. کوفار دامن پیران بار. این ایسارد صدر نمیکرده. کوفار دامن پیران بار. آیا میگه یهودیها و مسیحای دامن پیران بار؟ این کتاب به خورشید. ااا خونه. بار. یهودان اسارد جدا شده. عیا در. این کتاب به خورشیده. قرآن عموم برای همه مسلمان هست یا نه؟ اما کتاب خاصی در. خب. حالا. آیا بعد شما؟ عمومه. اما کتاب های خاصی در. عموم. آیا شما ولی اسلامیه نتونستارم این شما؟ اگه براییسایه بله، ایسانم را... ایسا نمیتونه پاشیره. لایاسان کدوم نامین؟ آلان ایسانم نمیتونم، آلان نمیتونم. اینجا بایه بله، اینجا بایه پاشر از کدوم دور میکنه؟ یک دور میاد. پاشراتی تح... ها. پس معلومه این آیه شامل ایسانه میشه. دوم، شما فرمودید که آیات بعضی ابلاغات رو متراهم میکنه و من درش آمده نه بر زمین اکوله. توست به خلها و سماوات و ستاره و آرزو و من فیهم. تسلی از آقین صادرشی از دیر آقین. ارهچه دیه حیاته در یک حیاتی بشری که حیاتی درخت حیات تا درخت تا زمانی که زنده است یعنی ترا تسمی بیگره زمانی که عقل داره یا نداره ماله عقل داره اغنضره. اغنضره. اغنال اغنال نه این مثال حال بار دی مادرت نبی علی صلی الله علیه و آله کبری گذار کرد گفتنه در آذاب گرفتاره بعد گناهشام بیان کرد گفته که شرکت درست بیارید یک نر دو تکار روی کبری گذار گو شاید آذان به زینه تغییر کن تا نه ترهاستند خوش نشوند تسبی می‌گن تسبیه که به مناسب ذات اون هست ملاسب ذاتی ملاسب ذاتی یعنی به اندازه‌ای که ترها تسبی می‌خوانه تا در در اماز دبی لکول اون را نمی‌گن دبی لکول نمی‌گن درک داره که خداش نسب باشی نیستیش درک داره به حال خودش خب به حال خودش مثل علی بردخیل اما دبی لکول ترک نمیشه در کل اعراب و امی شیء الا يسبح بحمده ولارکن لا تفکه‌ونه تسبیح. آمنا و صدقنا. سوریه اسرائیل چلوشان. سوریه اسرائیل چلوشان. درسته؟ پس ما اعتقاد داریم، هرآنچه در دنیا تسبیه خدا میگه، به اندازه خودش عالیه داریم. عالیه. اگر به همون اندازه خودش نیاز به شفیق داشت لاشیتی. بله. به همون اندازه حیات خودش دنبال واسطه میگرده برای سه یا ده یا یه نمیگرده. نه خیلی نه. درخت نه همون چونی که خدا رو شنا و تشبیح کرد و خودش رو کبک دانست درخت وصیله نمی خیرد چوب وصیله, وصیله نمی خیرد از کجور جامو گیره می خواهد اون نیازی ندار اون تمام... خود اعلم تمام... فرشته تصویم می گوه نمی گوه تم... فرشته ها یه جو وصیله ندارد نه وصیله ندارد به جنت بروه و لذات نمی باید به جهنم می روه و نمی سوزه یعنی فرشته آن تصویم می گوهد ت ل ذ ا ت ن م ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ت ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ل ن ن ح ل نحن نحن نحن نحن ي ا ن و ت ع ب د و نحن ن ح ل نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ب نحن نحن ر ح ن نحن ن ق ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن در قریش افتاد پرستند خطاب برای آنها. در قریش افتاد پرست بود؟ اکثرش نه. شاید یکی داشته باشه. اما به عمومیت. آیا در قریش شاید به عمومیت ندارد؟ در مورد عیسی میگم شاید در قریش کسی بوده که مسیحی باشه. از جمله نو فیل. نو فیل مسیحی بود یا نبود؟ بعد رتب مسیحیش. نو فیل اول زمان مسلمان بود. بعد مسیحی ام در قریش بوده. بله. اگر اون آیه ای که شما میگید خطاب به نو فیل باشه. بله. خطاب به اکثریت. اینجا دو به اکثریت. کلمات جمع سیغه جمع مفرد جمع مدنی جمع, جمع مدنی بله مفرد جمع نمیشه چرا در قرآن یادیت <تصفيق> مقارتن رو میکنیم بحث این مقارتن نه زنده مقارتن نه میگم در قرآن اون کسی که در مورد آیه نازل شد که یا کولون ال ار رجعنا ال مدینه ال اخجن ال اعراب منو ال اذل شن فرود یکی و یه جمع بود ونها همون صفید ریشی بود عبدالله بن نوبار. آن شخصی چطورن؟ چون باقیه بسیغه جمع آورت کرد. حقیده همه یشکی بوده. یعنی اگر حقیده همه یشکی بود، اون چند نفر مناسبه؟ آقا گوستار یک ماریا. آقا نوپی مزور نبود دنیا من خودش. آیا کسی نبود که حقیقه رو داشته باشه؟ آیا اینجا لاتر سودش می‌سوزه ولی؟ درباره در انسانه. درباره انسانه. شما از کجا می‌دانید؟ باقی ارب دربار فقط دو نفر انسان. باقی آیا خیال‌آبی پیامبر قومش نازل شده؟ مشاهده در بین اونها کسی برای کنیت قضا داده شده. حالا من کاری می‌کنم که امپ شامل شن آمیت. یکی که عمش عمش عمش یک نفر برو بیاد که در زمان پیامبر در مکه شن خوشی ترس می‌ده. بله، <تصفح> یک نفر در تولد. من خدا نازمی است که برای ه تمام خطابش برای خورشید است. چون شما... په‌عمربر برای کل دنیاست. قرآن برای کل دنیاست. تا آخر الزمان، تا آخر الزمان همه را خطاب می‌کند. دو دقیقه قبل در بحثان او فرمودید که مقصود یک شخص خطاب به زاد داریم یک شخص خطاب با واسطه داریم. این زنده باشه. خطاب به زاد و قرآن به چه کسی بوده؟ بله. خطاب به زاد. خطاب خاص اول به په‌عمربرالسلام، اما اشاره به تمام قوم خورشید و خطاب کجا در زمانی که شرک خیرالله بعد هر این امون میاد تا آخر الزمان. خو؟ چه امر شما؟ آخر زمان؟ آیاتی, زمان؟ آیاتی, که قرآن، قرآن، آیاتی که مربوط به بستارستیس. اما اما اما برای همراهمون. آیاتی که مربوط به بستارستیس، فقط محصور در کفاره کریش میکنید. آیاتی که مربوط به این آیاتی که من میام میگی نه مربوط به چی؟ نه مربوط به بستارستیسون زمانی برای ایم الله صلیت و سلام ختاب اون اونها را جدا ختاب میکنه. اما ختاب کریش جداگانه. شفافه. ختاب کریش. قره... این آیه درباره کی؟ هر آیه ختاب بگی. این آیه سوره اکاب کیم؟ و من آیات اول من آذول ممید و من الله درباره کلمی بکنم اما همه آم. آم شامل همه می شه بات چه باره که چه غیر ولش؟ حالا برای شامل پرسش شنندگان عیسی میشه شامل پرسش شنندگان موسی هم میشه شامل پرسش شنندگان, می شنندگان بود هم میشه عیسی و موسی که بود نبودند عیسی و موسی بود بدن بند استن زیرو استن آقیل استن ولی ولی استن ما, ما این... منظور ما کل این است که نخ خالص به غیر زیرو رسد نمی کنه. امبیا و آوریارا قریش صدای بکرند. با این کلمه ای من اداللہ. به چه اولاد؟ آیا را حس در قریش این جامی کنید در اون جام که نه وقت قریش نیست. شما مساقی من آیا را پرایما پیدا بکن. مساق این آیا. هر اداللہ من من مي... اومدم. من اداللہ من جد و من الله من لا یاستجب له. إلى يوم القيامة وهم عندهای مقفلون. و اذا حشر الناس کانو لهم آدانا. و کان به واده. این مساق می را پرایما پیدا بکن. آیا بتوانیم امبیا اولیاس؟ برای هر کار می‌کنم باش. نسخه‌ای را پیدا بکنم که نبوت بودن، بتن کار می‌کنند، بدت مدعی میشه، بدت دشمن میشه. بنده... دیگر نبندگان خدا هستند. شما در اقتدار فرمایشاتون فرمودید که کسانی که قریش می‌پرسند همه کنجه‌ها اولیاء الهی بودن دست همین شد بود. نه و دنو درسته. نه و دنو درسته. کوم و مات عبودون من دون الله حسب جهان ما انتوم له واردون. درسته. بالا بالا. این کتاب چه کسی است؟ کتاب بقورش. ایرا ادامه بدی؟ ایرا ادامه بدی؟ لواکان ها اوله آله تن ما وردوا؟ اگر اونها آله نبودن وارد جهان نمی شدند. شما فرمودی تمامی بودهای قورش خدا بودن. افراد استعله بودن. بلد بلد. نه دو نفر سرده شدند. بله بله. درست؟ بله. پس اون نه دو نفر سرده. لواکان ها اوله اون کتابی که میبرستید آله نبودن ما وردوا؟ وارد جهان نمی شدند. ایرا ادامه بدی؟ ایرا ادامه بدی؟ ما کل نهیا قلی دوم. ایرا ادامه بدی؟ ارادوا ه مسناك ان نكون ومات ع ب دون م ن د و ن ا ل ل ه ما ك ل م ة تمام بل هما غير غير ارواح جهنم جهنم من م ش ه و ع شما و ع ن كسان ا ر ك ي ب ا د ت ميكوني د ح س ا ب و جهنم آ ي ة امبيا ت س و ر ة امبيا آ ي ة نوضه هاشتا س د و ي ه ان ك م ومات ع ب دون م ن د و ن ا ل ل ه ح س ا ب و جهنم انتم لها و ا ر د و ن ほう。لو كان و عالیه جهان دن میلند میلند این جازب ایرادی که میچوچات الله حکم نزدیک نه نه الله حکم نزدیک این جازبه که چطور استرس نمیکنه خوب وقتی نگاشدی از شما یه سوالش شو تا جواب بده تو دل وقت داری خیر خیر معلم ها یا اینجا وقتی ما تعبودون شامل اون کسانی که شما گفتید لات از زاو مناطق حوالی همیشه نمیشه اینجا آمی آمی معلم لوقان عاولا آلات مضر دوها هاولا ضر دنار عاولا میاد دنار معلم ضر دنار عاولا میاد دنار اگر بود هستن تصویرشان وارد نمیشه نه اینجا آلی سریف گفته مدل لواکانها اولا آلی هم ما وعده ده خو؟ لوا برای نفیه درسته اگر آلی نبودند وارد نمی شدند آلی هنیستن حس وارد آلی هنیستن وارد می شوند آیه بازیه بله آلی هنیستن حس وارد نیستن باید که شما فرمودید اونها افراد سالی هست بودن افراد سالهی به نظر شما که وارد آقش جهنم می شود آیه بعدی رو نرجه در می کنه در اینجا داخل آیه بعدی در می کنه شما بگه اکثرشون این طور بودن بعد بگه آیه بعدی حدا می کنه خدا آیه بعدی بمعنه می شود آیه بعدی بمعنه می شود خدا شو. اینقدر فختی شما بخید و وقتی من میگم نفر میگه یه نفر بوده、ها. بعد خودش هم میگه نه بدون نه درصده بودهاشون ساله بودن、ملوه. یه درصدشون گریساله آیا اومده اون نه بدون نه درصد گفته واردوو بر شان اساس نکرده بگه از اساس تقصیر اکثر میشه تو به فرمایش شما لوقا نه هولا علاه ما واردوها همهشون مینن تو آتش یه رده بدون نه درصدشون آیا این بافی ساعتی قرآن نیست از به فرمایش رکل... شما آیا بعدی اگه آیا بعدی شامی خارج میکنه دیگه なんで ایناللذین علیمین انبیا و علیرسالسناه اینا... از... ای ای ای ای ای ای انا... این عارش و تجربه بودن ایناللذین سبقت لهم منلا خسنا و لایک آنها مبادل شو تفرز بگیریم تفرز بگیریم که این اساس نیست قرآن صریمی کرد این نگفته ایلا نگفته نگفته ایلاالذین سبقت لهم منلا خسنا شما این اساس نه از کجا مطلب است این اساس نه از مگه بشه شما آنها مردایش بیار برای ما بیام خانم ناز サバサロンメンダナー。LarinaSalinaSaladam Menalhosta、Ulajan and Narubadu, or your own day.Shako Bandagania, Lara, forestation, Sadamicalan, Kiban Nabotra, Bandai, Shumo, Bandaganabu, India, near the business, Shumo Farmuddi, near the business, Farmershot, Shumo Farmuddi, Axar, u بلی. آیه گفته وارد جهنم میشوند. بعد استثنا که گفته انلذ تبر فرمایی شما. انلذ نسب وقت نامنل خوشنام. تبر فرمایی شما. این تفسیر اکثر هضیانیست. تفسیر اکثر هضیانیست. اگر تفسیر باشه. تفسیر اکثر کسانی که هستار نرولابند بودند، بندگار استس نمیکنه. تفسیر اکثر قبیل هست یا قبیل نیست. تفسیر اکثر قبیل هست یا قبیل نیست. تفسیر اکثر アサン・ラビー・ウン・ハーサス・ケス・ナー・シュー・ハーサン・アー・ネン・マサレイ・ウスルー・エルミア。ジェケ・アーマス・ウン・キ・ハーサス・ガード・ハーサのラビー・ミシューワー。アン・マス・ウスルー・バーズ・アメ・マス・ウスルー・バーズ・ホジャティ・ヤキニュー・カ・イアサス・アザ・ネット・ペルミシューワー。インド・ウスルー・フェク・マイト・カルザ・マー・ケス・ナー・アマー・ハー・アマ・ハーズ・アワー・アン・ザ・ニアス。 عمش زنی توانایی دارم مثلا شما فرمودیم ما اصول کنیم بی سوال نیست من آلهم نه ممیدم اصول شیعه وسوم ندارد که تخصیص اکثر قبیه هست سونیام دارم ولی درسته تقصیر در همه شاشهام داریم این رو تقصیر کیم از قبیه میشه قبل از تخصیص زنی استیانه قبل از تخصیص زنی استیانه عمیق استیانه قبل از تخصیص زنی استیانه عمیق استیانه قبل از تخصیص زنی استیانه عمیق استیانه قبل از تخصیص زنی استیانه عمیق استیانه قبل از تخصیص زنی استیانه عمیق استیانه قبل از تخصیص زنی استیانه عمیق استی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 این کلون به که برمیگرده؟ تمام معبودنش ما تعبودونم این دون الله کل تحکید میکنه یا نمیکنه؟ زهرم تحکید اولا این کل تحکید میکنه خلاف فرمایه شما در استثنایه این, این لنده سبقت دارندن خستاست میگه اصلا این لنده سبقت ربطی به ما قبل نداره مربوط به مؤمنینه、دامنه. چون قبلش بوده کلی کل. درسته؟ بره هم خدا گفته لوکارها اول آره ما ورادوها بردشم کوتاه کل لونفیا تأکیدم کردم شومان فرمودی اکثر اینها اولیا بودن、برد. بعد می‌فرماید باعیه بعد اما ده اکثر رو خارج کردم آیا این تخصیص اکثر شد یا نشود؟ آیا کل تمام افراد را شامل میشود؟ تمام چیزهای؟ بله تأکید کرد، علاوه بر تأکید هرچی نیست تأکید است تمام شیر را شامل میشود. خیر. بردمم یک کلمه کل. واقعیت من کل شیر ملکهای سبز در اینه داریم. آیا همه جامداری دارند؟ ماشین داشت، موتور داشت، موتور داریم. فرض اسپول تمام افراد شامل لیست هستند. کل در کل مذهبی اونها در خود کل در خود کریان و اوتیت اینالله بر کل شیم قدير این کل هست. آیا الله ترند هاونم به ذات خودم قدرت در در مهاجرت هستم داخل قدرت نیست. و اوتیت من کل شیم و ملکه همه چیز داشته ایم ماشین داشت. لازمه در کل تمام وارد به کل یک کلمه عامی تأکید هاش جلوش کلمه عموما تأکید هاش جلوش تا استرسان باشه تأکید استرسان که ما تأکید همی مردال محمد نام قبلش گفت که اینا لذت نشده اند مهمه اول آنها ما ولد و ها و کلون فیها خالدون خدا بلی همهشون میان جهان نه بعد میاد کنن همونمیان نه ولد نه در سرشون میان بیرون تو بگفم آیشیما نه ده... نه نه نه نه اینا لذ شابی اینا لذ سبکات همون آدمیه نه نه نه یه کشت و یه بزرگ میشه با هر دیما در این دایان مانگفته نواد در سال عبادت غیرالله باندگاره میکردن الان اینا که در شرق استان اینا خود با خود نمون نواد تمام در جهان میرو اما بعضی انجام مذوق ماتاب دونه اون هاره خوران است نامی کنه ماتاب دونه نه غیرالله رکش میعبادت کرد、solicit. どうしても、この人たちの思い出を聞いてみナと、この人たちの思い出を聞いてみると、 این مدعیک اولیاء آمیابوده اینا بیرون میشوند لب دانها اونا دایو میگه یا مدعیروم لب دانها اونا آله ها دایو میگه یا مدعیروم مدعیمی مدعیمی حس آله این جا به بعد راجع به مدعیف در اینجا شما گفتیم مدعیها ی قریش نوادنوه در سدهشون چی بودن خوب بودن بندگ بودن نزدیک بودن نوادنوه در سدهشون جزو اولیاء قریب بودن مدعیفین لواکان ها اون مدوفین آله ما واردوها مدوفین وارد میشند و کل کل كل مدوفین فیها خالدون لهم فیها لهم به کی میگه؟ بعد مدوفین و هم فیها لایس معون مدوفین لایس معون درستی؟ پس آیه گفته مدوفین شما همه در آتش هستند شما بعد میای میگی اسنس نام کن با این نلدن نه ولی نوره درسته شورو هر چی مادوی انسانی بودن بانده خدا نیک بودن خورنونارجدام می‌پم. نه نود درصد رو. آباد نود و نود درصد. حضور ما می‌گه خدا گفته که هر چی شما انسان پرستی نیوتواشیش. نه برشت نه آباد نود درصد شدیم نه پگاری درصدش میده. کنارمونه که هایر زیرروب. این نجوتا. هایر زیرروب. این نجوتاکسی ای... عکس. اما نوادنون اما نوادنون آیه بعدی استثنایی کنه. نواد درس داد. گی دومن آنجا. شما ادعا کردیدی استثنای است. و حالا اگر استثنای باشد نشونه تقصیر. اگر استثنای بعدی نبود هر فصل اره از... هر فصل ما. شما, شما میگید استثنای است. بر اگر استثنای باشد تقصیر اکثر. نشونه آن نمیشه. جواب دو... بالای آن. بال برد. تقصیر اکثر شد. تقصیر اکثر. هست یا نیست. بله. بله. بگوته خورن سریع. هست. قبیه هستی. پس شما فرمودی در این آیه تخصیص اکثر کرده و تخصیص اکثر هم ته به فرمانش کرد. تو نقبی هست. بله من. پس در قرآن ایواردی به کار بوده کار جهت ادبی قبیه هست. بله من. قرآن ادبی هست و شما میگید در قرآن چیزی به کار رفته کار جهت ادبی قبیه هست. بله این قبیه است. شما این قبیه. مسلم. ای مسلمان در کوفه سلام مسلم که ادبیات قرآن قبیه. قبیه نه قبیه ما قبیح قبیح قبیه قبیه, قبیه. قبیه. قبیه. <تصفح> آزیش شما. شما فرمودی تخصص اکثر میشه بله علاوه تخصص اکثر از جهت ادبی قبیح و زیست هست یا نیست نه نبینم میشه تخصص اکثر از جهت ادبی قبیح نیست, نیست. در ادبی کتب ادبیات در مغنل نبی در کتابه آیسیوکی و در سایر کتب ادبیات که بعضی از سنا رو مطرح کردند و همچنین در کتب اصولی、مم. شما در همه شون آمده است تخصص اکثر قبیح است از آقین از آقین سر نمیزنه. یک شرطی بود بگه من همهش شما رو دل وقت دادم که یه دز نقدونوک دادم فرقی نیست میگه دکتر اول آم گفتی خاص میگفتی、باید. شما فرمودید در آریه اقتدام میگه همه شون مینن جهنم. جهنم بعد نقدونوک درصد رو استس نمیکنه این میشه تخصیص اکثر、باید. تخصیص اکثر اجزاء ادبیاتی زش دست تبرگ فرمایی شما در قرآن چی دی به کار رفته اجزاء ادبیاتی زش دست و سلاحیت نداره پس فس قرآن فسیق نیست ن قرآن فسیه. پس چرا؟ اون کانونش کلی نیست. چرا؟ اون که کبیه می‌داند اون کانون کلی نیست در مقابل قرآن اون قبایتش رف. تمام شد؟ پس چرا میگی در قرارها؟ قرآن, قرآن, قرآن نوادر استثنای کرد. نوادر رو در سر. نوادر رو در سر در استثنای کرد. یعنی اول خدا بب حتما شن می‌لیم در آتش. برای این امر. قیز نوادر رو در سر تو. آمانتو بگذار جاندار. زنیه آمانتو زنی. استثناء آمره خاص کرد. وقتی اتصال مکالمه کمی می‌کند زمانی است که تخصیص اکثر نباشد. ادبیات را ما خوندیم، اصول هم خوندیم، تخصیص اکثر را می‌گذرسن مکونی سرور آن آمده باشد. شما این عیاره، شما ترجمه مان، شما آن را گوییم، شما و هلند چه بپرستید، سنج بپرستید، حیوان بپرستید، انسان بپرستید، ما تعبدون می‌دوندیم، ما هم آوردیم. شما بر همه چیز می‌شود. پیامبر باشد یا غیر پیامبر. هر بارمایش شما نه ترجمه <تصفيق> نه شما ترجمه خودم بارمایش شما را بگو ده شما همین آیه را تا ساده یک خودت ترجمه کن تا اونی که مام بیم آیه آیه را شما همین آیه نبوده هشت را تا ساده یک برام ترجمه حالا. من مینم مام هن ترجمه باشه برای شما از سهیه بخوای اول این آیه رو ترجمه、نایجا. بکن بعد به سعی بخاری بکن یه قرینه می‌گن با ترجمه نه اینجا قرینه نه شون سریه این سریه قرینه نه شما همین آیه را تاسادیق برای ما ترجمه بکن به آنچه شما در مذاهب در اقیاد در عدبهات خودش شما یا در علم شما همین نواده‌هاش را تاسادیق برای ما ترجمه بکن شما استاد باشیم آن شاعر دشمن الان برای شما استعیب بخاری باید اسم سعی بخریرم یه قرینهی دو... بیارم یه قرینهی بیارم تا بعد مشخص بشه مقصود من چیه برای چی این تفسیر رو میکنم <تصور microphones> حالا یک روایتی ایست که این رو احلسانت هم نرز گردن برای این که بحث ما به صلاح از درکت خالی نباشه در روايات اما اگر در مجلس ايجاد بشه من نشونم بدي براي در مجلس ايجاد بشه و دوردوباتي آمبار نفل استن از كنجال بولند نميشنن مياد يه ديوان انتن نوريخل جيفه يك سادورود سالوات مربيان بر براي مسلا الله و صل الله و سل الله محمد و الله محمد و الصابد محمد خو جزء علامتهاي كه در مورد خوارج نادر بود مطرح ميشه دوستن يه ديوان بدي بدي در کتاب آیات برای متن کتاب که در بخاری در سهیه بخاری با بقطر خوارج و کانب نعمر یاراهم شراره خلق الله و گفتند هم انطلق ایات نزلت فلک فا تجعلها علی المؤمنین آیاتی که مربوط به کفاره است در مورد مؤمنین نظر دارم در مورد حشنبی همین مقدار رو در دیگر کتب از جمله تونی دستهای بخار می‌ده که فایده می‌کنه ولی همین مقدار در انواعی از روی کتاب که دانش آموز خود نداشته باشید همین رمیاض راجع به اهل خوارج مطرح می‌کنند میگه اینها شان نزول آیات رو نمی‌دونستند فسک و به دماغ و انتباه و به آمار و شهاد و علینا بر دلاله چون شان نزول رو نمی‌دونستند کودن معمولاً راکسته چونی که این آیات در ادامش اگر ما بخوایم این ایه رو آم به آم بگیریم شامل انبيا هم بگیریم شامل اولیا هم بگیریم نتیجهش میشه انبيا اولیا جهنمی هستن شما تحسیکت را قبول ندارن لذا با این کرینی عقلیت و با استناد و همین دو ویا که در بخاری هم آمده میگیم از این آیه شامل انبيا و اولیا نمیشه ولی آیه چون درش ما آمده است مخصوص به ذکی لذت احترام میگوید شما و خطاب به قرش、نه. شما و غیر زب الاغوری که میپرستید و همین آیه قریده میشود که مقصود قرش بودهای بی جان بودند و اعتقاد داشتند که این بودهای بی جان جان دارند اعتقاد داشتند که همین بودهای بی جان صاحب اثر هستند نذاب خود قرش اونها رو به خطاب اقلا موسوم میکردند این از قرآن برگو جان اصلا اصلا اصلا هر آب خورده شد من بروند و اولویت اول شما ایرا بر ما ترجمه کنید نم. و, و, و, و نمبارم با ما تلفوت کنید شما به هر آنچه بی فرسید از هر آنچه شوند ورای که بروید حسابو جهنم یزدو جهنم هستند. انتوم لها وارد میشوند. شما همه گی دهار جهنم کای کرد. اگر آنها خدا بودند وارد جهنم نمیشدند. و حالا که همه آنها در جهنم خالد هستند. لهون فیاض زهیب و ها فیاض اسمعیل در اونجا یک مثلاً از دکتری یه شوالی صدای شوالی هاتش صدای سوکند دارن و همون فیاله است، باهم در جهنم هیچی نکنن چنین. جلوتر. و این نه لذی نسله قدم من نفس نه. اما چستانی که از قبل ما به اونها نیکی دادیم. مخصوص、مم. چه چستانی؟ مقصود کسانیست که بر دین ابراهیم حنیف بودن در امت ریان بر باید شما همه قرهش اینطور نبودین در بین شما قرهش هم کسانی بودن که بر دین حنیف بودن ایناللدین سب قدل همونم خود اولایکه انها مبعدون یعنی ان عبادت الاؤزان انها اینها ان عبادت الاؤزان اینها بود ترسش نمی کردن اینها بود ترسش نمی کردن می‌جا شما... ما از که ما از که اونها... آنها را کجا ما از که به آنها حسن نداریم لذا آنها بابینشی که داشتن آن کار مید آنها مرزشیا دایی آن کارهای خبیثشون از افعال خبیثی کفار قرش شاهد بریم مطلب الخبیثات والخبیثین والخبیثون الخبیثات الطیبات الطبی طیبین تمامی علمای اهل سنت و هرکه ابن تیمیه که ها و ها بیا خیلی به شیعه تقدرت می‌قصد از کلمات الخبیثات والخبیثین ها. یعنی کارها و اقیدای خلیس برای افراد خلیس است. پس من برای این انتقاد خودم برای این تصورات آیه دیگه ای شنیدم. اولادی که آنها و بعدون، اونها علیم کاری که قرش میکردند دایق بودن، دور بودن، پیگانبر نه زیب و ترسینه کردی. علی لحظه ای بود ترسینه کردی. شما میت علم الله باش. آنها مردایش نه. منها یعنی هن کلمات ف... هن... هن... القابیات القرش. <تصفح> چقدر تفسیر آیهای دیگه؟ از سرانی مانانه، از سران در کل دکورم بگردهمی مانانه. شما در تمام تفسیر مرده آنها را بیارید. از تفسیر خود، از تفسیر میزانش، شما از تفسیر عالیش. آیا این تفسیری که؟ باعث بعدی ماشمر روی همین زمیره. شما میگویید، ما میگیم آنها راج مردش جهنم و ناز. شما میگن نه مردش همین بندگان خود الله تعالی. نارهم نباید باشه. من نمیگم نارهم نباید باشه. یکی از تفاوت‌هایی نه. شما همین ترجمه را در تفسیر خود و در تفسیر علی سون برای ما بیارید مرزیان هر کجا این یک داروی معروفیه یک مسئله ای که برادرم این... باز میشود مرجع آنها را بیارید کی به آذنار نیست مردش و بنگان خدا است ما میبینیم که اینها آنها مردش نیست, مرجع من, مرجع جهنم نیست. نیست. جهنم من میگم نار هم میتونه باشه ولی با این تفسیری که من کردم چه نار باشه چه عبادت الوثان نه نه نه. نار باشه. عبادت راوسنم به کلی نیست، آن ها باشه نار، نار هم باشه. نار اینها نمیروند. یه این بار باز فریش شد. نار هم باشه با تحریمی که من کردم بهانه از دست شما گرفتی. یعنی شما دیگه نمیتونید دعای کوفال کرهش جندار میپرسیدن. جندار، غیرتند. شما آم. اکثران جنداران زیرو ون وليورل. من دونرلا جندار و غیرجندار. چهول هم می شد میشدی. دنبال این آ یادی که شما بهش سیداد میکنید، خب مشمالان یه راه کلا بس، جنب بکن دو چیزه باید داشته بکنی برای بس بعدی. اولن این لازمیه تدونه مندونه ابدون انسان ابدون را باید بدانیم که چه هست، یا چه بوده، یا چه روز. دوم مرجای آنها را بدانیم. این لازمیه. سهمون شب شما فرمودی در بخاری حدیث داری؟ بالا بالا. که پروردگارالسلام از نادریات غیرالله چیزهای خوردنی را ما برای ما باهو شمارش کرداریت نکنید. چه شماره می‌آیند؟ اون رو روایاتو امده برای شما. مخربیم ما شما نداریم. اون شماره‌ای که شما فرودی مالدید. خوب من الان اون روزار می‌نوشیدیم. این ات ما به این اریا داشتیم که مرجع انها چیستو؟ نه مرجع انها. ای بابون ای بابون نار باشد یا ای بادت هر کدام باشد فرقی نمی‌کنه. اصلا این بحث بزرگی است. اصلا ما همیشه تو یک نار گرچه این بحث ما شد، دعواهای ما ثابت شد. دعوای ما اون نبود، دعواهای ایمانی ای بود که آیا اون ما تعبودون شامیل اولیا میشه و یا نمیشه. بله، بله. من گفتم به خاطر تفسیر اکثر شامیل اولیا شما فرمودید ترجمه شما. من ادعا کردم ترجمه شما غلط است و تفسیر اکثره. بله بله. شما مدرکی بیارید در اینجا فرمایید که اون شامیل اولیا و انبیا میشه و، و تفسیر اکثر هم اشغال. مدرک ما در هر هزار آیه نواد ساده نوادو چهار سوره آراف. آیا پنجو شش سوره اهکاب آیا هشتاد و چارت هشتانو سوره المؤمنین آیا هجده سوره یونوس است؟ این رجوعش شما از فرمودی جواب شدند نه جواب تا الان به من من کار نشده است شما جواب داده بر خودش دار برادر شما شما ماجور هستید این جواب مال خودش شما من کار نمی‌کنم مال شاعر در... نیستم تا کار نمی‌کنم نه در زیرسیقاب خودش ما همین حالا آمیش کردم شما فرمودید بله درسته نه وارم زد کنیم در زیرسیقاب یا جا دوباره شما برگشتید باید که مراودت انجام من سوال کردند، با شما سوال کردند. به دادهای مناظره است. شما یکبار سوال بر رویی برم من. اما ماسی فایل دلایل تمام که داره تمام میشه. این نتیجه هر فیتونم دید. خوب حالا من یه لحظه از دارم که ما جمع ندارد. سعی بخوایی. با ابو حادیس زیب نعم رب نو فی در چه کتابی است؟ این کتاب آموزشی است. いいやつになりしってこい。 یعنی من آوریاشو من سر کایم کار کنم. با چه شماره سه هزار ششصدوچهارده. سه شماره سه هزار. ازون یکی از دیهاه دو شماره داری. حالا من یک شماره دیگهم داری. سه هزار چند وفی؟ بابی شماران سه کیو شماران سه کیو. من فطورباریه برن ایهام. سه هزارو ششصدوچهارده. فطورباری اگر باشه مراقبش. سه هزارو ششصدوچهارده. یادارشی سادوچارا چه دوبار فذول باد داشتند چه دوبار فذول شوم درمان یادارشی سادوچارا یک دوبار فذولیم از بیرون دوست داشتیم با بوزهای دیپ نام روبن نو فی یادارشی ما اعتقال داریم یک کنون دقیقا همون کسانی هستن که اینا میپرستیدن میخواد درخ باشه میخواد سنگ باشه همونطور که دست در دیامت صحبت میکنه سنگ هم در دیامت صحبت میکنه سنگ هم در دیامت صحبت میکنه اشتاده من خبون داشتی قبل هم این شما هرده من شما 3600 رو سرده این بسی جوره ببینم فراهم به ایش میکنم کتاب رو من عقب همون مید بله بله بله الان پی ماو تغییر کننده بیشتریه. اینم ما را هم فراموش نکن. این رو بذار، این و... رو بذار. پس ما بکنم. ما فتح ول باری اینجا 3000 رو هشتادو بیسوشیش. 3000 رو باری رو بیار، نه آخری مهمه. 3000 رو هشتادو بیسوشیش. 3000 رو هشتادو بیسوشیش. از نبی صلا الله علیه و آله ملتیا زید ابن عمر بن عمرو بن نوکی پیغمبر زید را دیدم. به اصفهان بالدح در منطقه پایین بالدح قبل از اینکه واحی بپیوندند. فقد دمد این نبی صفر تو. یوری پیگمریا صفری آموزد. فااا با آن یاکنامه ها زید داشت نخورد. ثم قال زیت نیل است و آکولامه ماتر به هم نگان سابق. سهزار و هشتاد سهزار. هیستادویستو شی. یک نمی دید در اینجا عمل فااا با که در نجاس اختلاف بکیف میگه برای وقتا به پیگمریا بر میگه اما ادامش میگه که بخود زیت بر میگه. فطورباریم تصحیح کردیم. میگه زیاد باهم هر چیز هاری که شما برای بودها میخو میخوشت نمیخوره این توی باید. آن نبی صلّى الله عليه و آله فَالسَّفَلَ بَلْدَحْ قَبْلَ أَنْ يَذْنَ لَعَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقُدْمَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سُفْرَةً فَأَبَى أَنْيَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ إِنِّي لَسْتُ أَأْكُلُ マママたちのバーナーはあなたのサービスを持っていました。 فا فقدمت الان نبیتن صفرتون فابا این یعکورمین شما فهمبر به روایت قرینه بر این روایت است که مخصوص زید اتن امرا بن نفیل است ندا、بید. و ادامهش قرینه شده ادامهش همون ادامه شده فب... قبل واقعی قبل واقعی قبل واقعی از جمله از جمله از جمله از شواهیدی که خدا فتر بری رم نگه می کنی در مصند ابی احلاس الان در فتر بری نگه می کنی زمیر کجا ف ق د م ت الى النبي ص ف ر ة ف أ ب ى أ ن ي أ ك ل ممكن فعلى ا ب ا نبي ا ل إ س ص ل الله ل س ل م قال زيدون اني لست أ أ ك ل م ماتزبحون على أ ن س ا ب ك م ولا أ أ ك ل إ ل ا ما ذ ك ر ا س م ا ل ل ه ع ل ي ه و أ ن زيد ب ن عمري كان ي ع ي ب على ق ر ي ش م ز ب ا ي ح ه م ويقول الشاط خلق ا ل ل ه なぜなら、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはああああああああああああああああああああああああああ فقطعنا ل ن ف س م فقطعنا ل ص ف ر س ا فقطعنا ل ن ف ل ه فقطعنا لنفسه ف ق ط ع و ا لنفسه ا و ف ق د م و ه ا لنفسه ل فقطعنا ل ص ف س ه ف ق د م و ه ا ل ل ن ب ي ف أ أن ب ى يأكل م ن ه ا یعنی فاعل آباء خود پیامبره با این لوازم. خوب، حالا در ایدامش. کالا ابن باتال. ایدامش رو من دارم. کارت صفرت ل قرايشن قدمها ل النبي صل الله سلم فآباء فا ان يأكل منها. ابن باتال مقدسی. قدمها ل النبيو. فقدمها ل النبيو. صل الله سلم لذت ابن عمرا. فآباء ان يأكل منها. این دو, دو تا آباد. دو تا آباده. بالا باد. یکانو. این رو ابن باتال به عنوان تفسیر لواحد کردی. شاهدیم برش دیگر کردی. بله شاهد دید کرد ابتدای کار. نه شاهد نیست نه. خوب. اما برویم در ادامه.、خب. در ادامه وقتی شواهد روزه کنیم ابتدای جعبه بیاید شواهد بر چی میاره؟、مفهوم. مثلاً یک. فمرابین نبی وزید ابتدی حالته. و همه آکولان من سفره. پیغمبر وزید از سوفری می‌خورده. فدعیه دعوتش یاردن. فعال یابن آکی لا آکول من موضوع حالا نصب. این بارت مال کجاست؟ این در فصل باری است. این فصل باری من. فصل باری ارز دهی لر روایاتی علام بیامشون. مام نبود دیگه همه رو باته یه اوضاع پایتار شد. روايته حدیث یه آنداز دارش ریشه. ها دارش همه رو باید نزدیکیار دیگه. اول قولو بابا حدیث. بعد از اونجا بابا حدیث میاد پایتار. درسته. بابا حدیث استاد بنابر بنابر. یه شما پایتار. حدیث دیگه؟ حالا برای شما من از من خوب می باشه. تطبیق. いいね、バラティシエ。<音楽><音楽> よし、しょーだ。 یوشی شور دی؟ شماره هدیس؟ ماله. شماره هدیس که موهای زیل همی باب القاب و قولا. ببین این. خب باب. باب و حدیث زیل ببین عرب نو فی میاد در ادامه میاد سه اصل بنده. قول انجام. و فی روايته زرداری فقط دم ایله نبی صفره. قول تو روايته انجام و قال اینه که شاین ابن بعتر رو خودیت درسته. بگذار، که اد ماقاله هم محتوای خودت نه جرمی. اگه این ترجمهای ابن بعتر درسته،、ها. اما شاهدی برش ندارم. درسته؟ نه، گمان اینا را جزم بزرگ. فعیل اما قبلاً این فیروایی تاحدین. ترجمه ابن بعتر را قبول ندارم. ترجمه کشوری آریشون قبول ندارم. در ادامه、ها. میاد بگه که قال الخطاب بیش از انجاس. 私はあなたの人にとってはあなたの人にとってはあなたの人にとってはあなたの人にったの人にとってはあなたの人にとってはあなたの人にとってはあなたの人にとってはあなたの人にとってはあなたの人にとってはったの人にとってはあなたの人にとってはあなたの人にとってはあなたの人にとってはあなたの人にとってはあなたの人にとってはあなたの人 فدعیا اگر یاد نکیم نیلا آکلم مادوبه حالا میشه؟ پیگانبر داشتن توکر میخواد. او قبول نکرد بخونید. این سایب زیاد قبول نکرد. از... پیگانبر خور خورد زیاد نکرد. پیگانبر کرد توی نکرد. متنی رو نش متنی نیست. در متن. زمینی رو میاد. مقصود او زمین مکان است. امیر حضر هم ترجمه شمارو قبول نداره و شواهدهایی برشته. ما هردو ترجمه میکنیم. چه دعایی از میم؟ همین مضمونی که من اول کردم. چرا که تو آبایی دیگه؟ الان گرایدیم شما از این باسه من دفع میکنم. چه؟ گرایدیم شما از این باسه از این روايات. ما هر کدوم باشه. از امیر هر کدوم فایل هر کدوم باشه. ماکساده شما از این باسه بود. ما هدفمون اینه که کسانی که ادعا میکنن ما میخوام از اسلام دفاع بکنیم، از پیغمبر دفاع بکنیم و همچین رواياتی دارن. اول بعد یفیک باید لبامت رو خودشون بکنه. نتیجه اولی که زیاده. روان ضعیب نیست روان در بخاری آمده فقط در مرجع زمین اختلافه مرجع زمین رو خود ابن نحجر مچخص کرده میگه مرجع زمین که ابن وقتا رو گفته غلطه مسترده بلی حدیث حدیث از اتفاقا آقای بخاری ایک از علتهایی که بخاری رو اینقدر قبول دارن اینه که روایتهای مسترب رو نقمی کرده یعنی مدنی که کمتر به ضرر اهل سنت باشه با اینی که این مدن در جاهای دیگه به صورت مفسر و با سند معتبر آمده سریحا تیغنبر داشته می کنید بله من تصویی رو... کرده اصلا تصویی کرده که روایت رو معتبره、اه. من اگر مت نبود رو خودم نیلکه قبل از نبوبت سبوده یعنی یه شخصی قبل از نبوبت بیانبه قبل از نبوبت قبل از نبوبت او زهید ابن عمرت و نو فیل نیفهمید مستاذ احمد مارتون شو به فسکر میتنشان بگوانیشت زهران مسلم مارتون خب الان من مقصود شما را هنوز نفهمید اصل نگاره زش مازین مثال و ازین حدیث و روایت اصل نگاره ز بندی ماشی ایون باشیم و به سوی داریم که شما بیاییم ما با هر طرف گفتن داریم、باید. و همینجا من اشکالاتی کردم که همه کس شما بگه اگر من رو قبول داریم ما هر شما قبول داریم هستن اگر تكفیر نباید بکن نتکفیر نمیکنم اینکه این شما این شرکت ما نه گیم شرکت داریم تكفیر نیست اصلا نباید بگیم شرکت بعد بگیم که اینها به هر کی برای گفتن دارند در بحث‌های این مورد باید چی مخلوق کنیم؟ از چیز ساده. این یک. هم ما شما که ما رو متمیکانید به چیز‌هایی که مبهم است خودتون متاهل بیدارید که سریه است بر ضد قیام برده اسلام. این یه نمونش. نمونه‌های دیگه‌ای در بخاریس. خداوند از آسمان میاد به زمین. خدا میخندی. خدا هر ونه میکنه. دارید اینها رو دیازی؟ آخوند نه اهل می‌بود. マジで ام میخوام نمک در کتب شما خدا با شتور سوار میشود. <تصفح> در کتب. ما در ایران داریم. در کتب حدیث شما ما در ایران کشور است. ما در آن آشونو برای شما رفاه میایم. من آشونو از تهیه بخوریم یادم. شما از هر کتابی، از کتبش یا خاصیت میایم. میایم. علی اینالله، علی اینالله یعنی خدا یعنی الله جلال شانه او. شما شما فقط گوش کنید. شما کی رو فرمودی؟ من فقط بورش مدرک رو فرمودم. من همین الان آدرسای رباطی که گفتم دارم. جدا از این که، اینی که شما فرمودید در کتاب‌های خودتون نبود. که پیغمبر سوار بر یک اولاع در عربات، ابن همّب اگر گفته سوار سعی هست. که سوار اولاعه؟ خدا سوار بر یک اولاع، شب آمرن جعد قتون، علی حمله حمرات. آقا یه محمد ابن حمل بوده فهم من شکه في هذا الحديثه و جامعه. بابیان را... را... نگامی کن. اگر سهیب بودن هست من برای شما کتاب‌هایی رویش می‌دهم. شما هر چیه تراز دارید، بنوان استادی با ما روبه کنیم، آه. به من اعلام آه. می‌کنیم. بال بالا بالا کناره دارم سعی میکنم دارم سعی میکنم نه برای ما پیدا برا برا برا برا برا برا برا بکنم نه برای من آخری آخری جمله که بر اولاه سوار میشود اما محمد است ایرا برای ما پیدا بکنه چاش مجمل چیزی نیست از آن نه اما برای ما محمد است برای شما شما آدش مرا بیاری شما ادای من در همی مالی های رویتر مان در همی مالی آدش رو اگر شما همیگر آدش های رویتر اگر یک سوال نه سوالی کنم بس که میخوایم یه سوال ادامه بحث میکنم. بخاطرین رو بسته میگرند. ما در قرآن داریم که خداوند بگه که شما به کسانی که زندگی رهله کردن متقاضی میشوند، امتیازاتی داشته باشند. اولش که واسطه قرار دادن بین خود و خدا. اگر بخواد شیرب باشه، چون خدا میداند و میتواند چه زنده واسطه قرار بده چه مرده. چه فکر میکنی؟ نه سوال من اینجوریه. アリタシアンジャンの前に行くときに、まあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなたはあなたはあな افرادهای نیکو صلیک در دنیا رفتند متقابل بیشیم. ما وقتی که خدا در قرآن گفته که اşıهادا احیا راجع به شهادا علتی داریم، احیا را در وعی می‌داشوند. فرقی نمی‌کنه. وقتی توسط به احیا جاییت شد، توسط به اون هم جاییت میشه. این جوابش خیلی ساده است. اول توسط بونا جایز باشه. خداوند میگه که لایس دعا ما دعای کو، ولی سمت ما استجاب ولی کو. آیت دیگر داره میگه. به کسا که متاثر به غیر الله میگه بودها رو داره میگه شامل بودها میگه نه نه نه نه نه نه نه شامل بودها میشه من دون ندابه چی میگه من دون ندابه شامل میشه مخاطبش کی بوده؟ بیک کوپر دامانی پیدا کرد دامان هر وقت سعیه بخوانم من برجم میکنم که مشکلی نیست خودی باید را تکمیل کنی باید باید باید بخوانی من دنیللا شامل چی میشه؟ من دنیللا من دنیللا شامل انسان هستند تدعونا من دنیللا نه که من دنیللا تدعون ختبارش حضور همون قلیشیه من نه من من دارم که حضور در سعی میکنم حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حض چیته؟ حالا خداوند میگه من دون الله شما من دون الله را توضیح بدید که شامیل بود میشه شامیل انسان نمیشه؟ اگر من دون الله آدی باشه شامیل همه میشه؟ همون تکش میاد میاد شادگرودی کسایی که شما میکنید خطا فرم میکنید لذا در خود سعی بخاری لبایت میکنی ما بخاری فرق فلن... کنار بذاریم بعد سپرمانیه شما میگی بخاری کنار نه بعداً یعنی بعدش بعدی بعدش بعدی داره درجه دو میبخاره چه؟ شاید پیداشود، پیداشود. پیدیس آدم. اما شرایط داره. اجازه شما کتاب آقا ابنتیمیارو داری بیانو تلیسال جمعیه؟ نه. سپس بیانو. بیانو تلیسال جمعیه. بیانو. تلیسال جمعیه. جلد هفته فیضیشون هست. من اکثرا کتاب رو دارم اینجا. نه دادی به یادی. اجازه این الان میره دنبالش. شما اینا بیشتره راه من پاسخی. من دنیل. نه من دنیللا. شامل بود میشه شامل انسان نمیشه خدا فقط بوده من دون الله یا بوده تدعونه من دون الله همه تدعونیش شما بگید تو تدعون فعالیتی بوده و همه آداله من منی یکو من دون الله یعنی شامل هر چیک شما بگید قمره چه کسی من خودشون را داشت نمیکرد آیا برایش برقص... ترک کردی؟ کل شما اول اول من دون الله یعنی در ارز خدا قرار داری نه در طول خدا همیت از کس کنیم؟ ارز خدا از خدا بخاطر اینکه کل انسان نهی تو آن عبده لری نتدعونه من دون الله نثار اثباتشلو. پیغمبر نهیش فقط همیموده. نویی تو، آن عابوده. شما این تفکیک در آیه در قرآن گاری کنید. من نمی‌شم. شما حمام بشه. مالو هنری است. شما حمام بشه. حالا شما حمام بشه. حالا شما حمام بشه. حالا شما حمام بشه. شما حمام بشه. میگه ویوم ال قیامتی یک فرونه بشه. آیا تو باغ قتل کم؟ نه دنبالی هایی. دو تا چی؟ می‌گویم ولو سمه او. حالا ولو سمه او ما از تجا بوله کن. من از تجا بشه من ازیج تجا. شامل انسان رو. آه یه خدا به گنداله ول نی نهی تو آن آن چی؟ آن چی؟ آبودن لذیذ. آبوده نه آن ادغال داد تعریم. مشکل کفار عبادتشونه. مجد... باعث دعای عبادت نیست. اد دعا مخل اباده سوسل کاتی اد دعا مخل اباده سه تمرکزی نمیشه چی میگه اد دعا مخل ابادم میگه آجان ما چند دعا داریم در وقته قبلی هم باهاش دعا ما بهشتیم ما چند دعا داریم یه دعاي ابادت داریم یه دعاي تقلب داریم یه دعاي ندا داریم دعاي ابادت مخل ابادت نه دعا نه میشه هی دعاي ندا بله کل خاله یا قام نی دعوت قامیل عیلا و نهارا نه کافر شد چرا؟ داوود اینجا؟ داوود، داوود، دعوت. بابا دعوت. دعوت, دعوت. دعوت. دعوت. ات دعات ازشون نمی‌دیدی؟ با دعات ازشون. فردا همون ماده است. یه فرق نمی‌کنه. چرا فرق نمی‌کنه؟ چرا فرق نمی‌کنه؟ ای شما یا نه کنی. من اره می‌تونم. یوز به زیر نه. ولی اینجا میام می‌دونم. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی الیا <سؤال> مداریم خدا هم شمار دعا مداریم دعا دعای تقلب داریم نه اداریات میشه آخر دعای تقلب داریم دعای نهایی دعای نهایی داریم حالا نه هر کاری که داشته بودند دیگر نه تریسال جمعیات میگم نسخه شما ببین آنجا آشام خود ببین مخالف چی کسی است؟ مخالف دیگر نه تریسال جمعیه فی تاسیس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 قالوا كيف ر أ و ا قال في سوره شعب دونه ستر من لؤلؤ ك أ ن قدمي في خ ز ر ة فقلت أ ن ا لابن عباس أ ل ي س في قولي لا ت د ر ك ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر وهو اللطيف الخبير نعم قال لا لا أ م ل ك ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى ب نوره لا يدرك شيء وهذا يدل على أ ن ه ر آ ه و أ خ ب ر أ ن ه ر آ ه في س و ر ة شاب دونه ستر وقدميه في خ ز ر ة و أ ن هذه ا ل ر ؤ ي ة هي المعارضه ة بالآية والمجاب ن ا ب م ا تقدم فيقصد كما في رؤية عينا أنها ل د ي ث ا ل ي ة المارفوة صحيحة ا ل م ر ف و ع و ن انك تجد انك ا ل ك تجد انك تجد انك ت ج ا ن م تجد انك ن ك ت ا ن د انك تجد انك ت انك ن ك ت انك ت انك ت انك ت ج ن ك ت ج ا تجد انك تجد انك انك تجد انك ت ا ن تجد ا انك تجد د انك تجد ا انك ت ج ن ك ت ج ك ت انك ت د ا ا ن انك ت ج ا ن ن ك ت ج ك ت انك ت د ا ا ن انك ت ج انك ت من اینقدر کتاب نگاه کردم تحریفات و, و در هایت و در کتابها بیچار کردم. شمارده شد. شمارده شد. ما گفتم سوال جواب ندارد. هر کی داره گم سوال می‌کند. اصل, اصل, اصل بحث, بحث اصل م... ما در اصل توییده. چیزی که ما برایش از قرآن دریافت می‌شود. بله از اینجا. از اینجا. از همین. نیست. هی کلمه نیست. ها؟ این جمله کسی نیست. اوکی شده ما تقریباً نیست ما فقط نهایت کردیم. ほぼ何て م آسیب کتاب کنه، حالا مگر نه؟ م آسیب کتاب پیدا کنه؟ شما به ایبارت سرایتی کن، م آسیب کتاب پیدا کنه؟ مگر من وقتی بدونی آیا ناوز به کتاب یحقری دست مالستری مگر شما نمیتونید مداره؟ ما ایبارت کتاب پیدا کنه؟ کتاب پیدا کنه؟ ایجاب؟ این کته جسم شگاه؟ آ فیلند نه؟ تایس رهیتر است؟ آ فیلند برای ما تاجستم آورد؟ ما باید جواب دهیم. ما کتابی در نگیه چلو؟ باید درگیری نه بی کدرن نمای سراسر سال نکنم. ای مار نشان دادم مگ می‌بینی؟ バーマスキンバーラスラーズンキターン。 شافم. جمله رو بیشتر میخواد چه جمله ای که نیازم دادم؟ جمله پای میشه اول و آخر متنی. نه تری وقتی آنجا. خم میخواد یا آقای منی غازمی؟ جمله رو دو تیک بی نیستی؟ آن براش نه. نه اصلا. داریم دیدنم شدی صبر کن. نه اینکه اول کلی ترسکنیم. جمله دو تیک بی نیستی؟ نه اول غازون له. من. من. شما این تعریف شده است. از جا نوشتید، جا نوشتید ولی اینقدر که دوباره این من, من حاجب كتاب كتاب حاجب كتاب در سریه بخاری وری شما تعریف کرد که هم تعریف دارم در سریه بخاری من درم. در سریه مسلمان هیچ تعریف دارم. در مسلمان همه فموزد تعریف دارم. پس تعریف چیه؟ پس قبیل چهاری یا دویی داری؟ همون که سر حدیث رواشی کنه. ابراهیم سلم. حالا سماره خدا نداری؟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 صفات يا ربي. رايت ربي في ح ل ة خ ض ر ا ء في ص و ر ة ا ل ش ا ب عليك تاجر ي ل م ع م ن ه ا ل بصر ربي أ ي ت ر في حلت ا ل ح ض ر ا ء في ص و ر ت الشعب بن شغلت شاید شما فقط چند جلد دارید، این هشت جلد ده جلد داریم. نه اکتیاب کامل، منظورم نصف ستیش بازمانده. نه. مشهد جد استانی آقا جان. نه. آقای شوبدان چند جلد داری؟ آقای شوبدان. خوبی. اینجا وقتی که جد استانی مال دیکه ایجاد می‌کنیم. دو جلدیه کتاب شما دو جلدیه، این کتاب هشت جلده. شما بعد دو جلد شدید. تعبارت مکمله. نه نه. دو مست. آه. نه. پس نه. نه. این تیمی ام کمی چندیه دیگه آورده؟ ابرات مکمله داریم که تا امروز کنند. خوب. سه دسته سه دسته بیستو سه. سه دسته چون سه دسته شلوغ و دیگه که نتوانی کنند. سه دسته بیستو سه. سه دسته چون شوره با هدیتی که ایشان رو رواج کنند، که ایشان رستگار بدارن کیش میاد بیشتری. میخوایم مسافرشو ببینیم. همه مالا بحثی. الا اینو علام بیانشونی بکن سرتون ایستش ماست شما. شما اما بحث حیوان رو که شما گفتید من اون رو هم برای شما بیارم. خب لازیم امین را تمام بکنید بعد. نه لباس ما ولی نه. نه از آن تا. نه این برایت نشده. این برایت هم تکمیل کی کجا جبرانشی کافیه دیگه؟ ما نصفش نه نیستن شما نه نیستن جلدش نه نیست. سفه و جلدش هم قرمزه. نداره. اون تاج از 20. اشماری 20 شد. علام دش شما ازش میکنم تاج از 20. نصف دیویسون نباد. چهاردهشان نه شماره هدیس شماره هدیس نه شماره نداره شماره هدیس نداره نه شماره هدیس داره سه فیضون آباد کل ده هفتم کل ده هفتم چاپ وزارت وزارت اوقاف آرش است آرش خون یکی هم ابتال و تبدیلات از اون ها دو جیز دیگه از این همین رو بیاریم اون بسید که از اکرامه و از امدر باسمه رو بینیسنش همینی که حاضر قب فروض حیوان حیوان هم بیارم من خیلی در مهمه من اثبات میخواهم بکنم بعد هم شما تکمیل بکنم بعد اون رو بیارم همین بارد تکمیل بکنم این بارد تکمیل بکنم بعد اون رو بیارم قواعد بعد این نیست که از بعد اولی خارج شدی. شما قارچ داری؟ هم از رواجات دیگه در سیال علامت داری؟ داریت از جوان؟ سیال علامت داره. اش میرن جلدی آزاده. جلد هشت. من هشت. در رواجاتی که اهل سنت دارم جلد هشت فیش شونده. که شما به ما میگی رجع ما چیکسیس ジャマルとラビビのハロー、ジャマルのラガー、アレイジューパー。 این امیر و آله امیر امیر شابی ایشان من اگر مانع نبودش مانع نیستم حالا دیشب وقت نیستیم تیمی را این دیدیم من نبودش نیستم اینو شدیم این حدیث مشخص است ماست جلد اولی است طور شده یکی که ال مشانی که یکی که در خانه یا کساستی هر حدیث است نه حدیثه یه حدیث جدیده نه نه یه اش نه نه دیگه جد نه سفیه جد خونت شاپ می‌شود. شاپ می‌بینیم که من ویژه‌ایم. چی چاستی؟ باوشون دیگه همیشه می‌کنم. اولش ما عزیم کردیم. احمد ابن محمد ابن عبدوس. مابا یادداشتی؟ بله. احمد ابن محمد ابن عبدوس زعفرانی. تو هفت هفته بعد باشید. خفورون جلده هفت داره میزنه خفورگاه هم بره هم نه به بخشی جلده هیجده اشتغاله جلده هیجده, هیجده. هیجده. همه بودم هشت هیجده همه بودم هشت هیجده همه بودم همه این دستابرگی رو هزید از طرف نمون بذارم من این آیات آزها کمتنم این هر من خودم باش شواله این هر پیشتون باشم این هر راشمان باشم اما ساله ساله خیلی ساله است اگر واست در کارآمدترن شیرف باشه چون خودآور میشند خودآوران از اقتدار بورند تا انتخاب بورند و سیلر توزیده. کجاش؟ یک جواب دارم نسته اینو به صبر و صلاح یه نوع وسیله است که شما را به خداول نزید تجایت هزده دارن عزده نزید هزده دارن شما جواب یه دیگه هزده آخر دارن همه دارن یه سفر کامل نزید آیشان دروی دی آخری یه سفر کامل نزید کامل نزید که خداول به چی میگه به چی به وسیله توسید و ما آلوکم ولا اولادوکم بلیتی تقرب オーケー。 もうなるほど。 اصل توحید یک توایاتی دارن اهم سحنت که خود آقاییون تا شده نموندن سخت فرالله خلا ما چیز اکیمینم اقای برغازین شما به همون صحبتی شما هرچی اطراف بریم باید خدا شما این مضمون رو میتونی قبول بکنی؟ خدا میکنم این که خدا شابون امرادون فران؟ تغییر باید بشه دلنب زشنم دلنب زشنم این یک این قدر ماره اصلا برای این یاده من زاله پرسن توی کتابه ما هسته توی کتابه شما、هسته. توی کتابه ما هلو جواب... اگر یک داره روایت شطور رو گفتین اگر شما آوردین در کتابش یه روایت م... شطور من سنی میشم طب ما بیاهی طب حالا این ده... ده... حالا این دو ده... جا من بینیده کردن تمام شد حالا این جلی هیبده نه به هیبده تمام شد تو برنابه م... جامورکویر م... جامور م... م... خود سنیم در جلی هیجده من دیگه آه... زمان هست. اما وقتی که آدم بگویی از سنت صیحه یعنی لغت. مگر کوون آدم پیغمبره خودش این رباط را نداریم نگو شریم برای خودش تکاری عبدالقاسم. در رأی خود او در برمی دار. آیا شما میگید نتیجه کافر بود؟ نه. مطمئنی رباط کافر نیست نمی‌بینی. مطمئنی رباط کافر نیست. اما ما می‌گوییم تغییر کن. اولی هر تغییر وجود ندارد. اگر اتفاقی اینجا بود. بدون تغییر نه بدون تغییر نمی‌شود. تأخیر؟ اگر تأخیر کردی، پان بودم. ابتداییان این هر بزرگ بود و این دوست شهید نیسته بود، کافر هزینه است. چی؟ هم این دوست، هم که آن شان من کنچا بودند. خداوند چیه؟ خداوند یک جوانی شابون، امراتون جد و قاتل تون پیگامد زدیش. اگر حدیث زیب باشه کافر نیست. اگر زی لی... دروغ باشه ما می‌گیم که. حالا این حدیث تو بهار و لانوار دیدی که سه به شیطان می‌رسه نه در بهار و لانوار. جنسی یا نو باب 80 استعفی 107 حدیثی داریش ما این حدیث رو در سنادش سنادش به شیطان میرسه. در قرآن دیدی تو واقعه شیطان احادیثی که سنادش به شیطان برسه. واقعاً این معلومه که、قرآن. اینا همه شیطانی احادیث کرده بودند. عدم بیاته عدم بیات مرا آت بکن. این چون هم سوالیه نادرسته. هم بلندش که در مزمون چی گفته؟ در از شیطان یه حرفی نگفته که پیغم خودشو ممدهی لبکو. که یه بر حضرت نو شیطان رودید شیطانو حقیقی به گردن من فردا که رو این روايته ما نداريم حضرتلي ناوز بلافا شیطان <تصفح> کوشتی گرفت این روايته ما نداريم این توهين با اميرالمؤمنين علي رضي الله عنه كه امامه چارمه علي صلوات اين توهينه حضرتلي باي شیطان کوشتی گرفت شیش باله تاگه باي جنی کوشتی بگیره مگر اوناماريشون ندارن كه با جن از دوباره كردن مگر كسى نبود حضرتلي کوشتی بگیره براي با شیطان کوشتی گرفت نه آيا اوناماريشما با شیطان از باجی از دوباره كردن نه شیطان با جن فرق داره アフランスで言うと、ーラジルの話は マラワゼルナラシフィキタビン・アブデラ、ベネスラン、カラスメトバー、デラー、レスラン、ヤポロ。 リアル・オルマ、リアル・オルマ、ジャル・ドゥ・サフェイツ・アクトル・チャールズ。 الميرزا عبد الله افandi اصفاني من هلا ایلا... اهلام کتاب است. ميرزا عبد الله افandi که سنيه اينو نگه کرده. ها چه که؟ اين كتاب شمال. ميرزا عبد الله افandi سنيه نو نگه کرده. نرسیشی. نرسیشی اسنيه. نرسیشی اسی نرسی نگه کری كتاب فاضل نرسیم. ما خودم وجدارم حافظ جداست. زاي در نرسیشی اسنيه. نرسیشی وادي كتابش نياهم كردم. آنها مضمونشان. مضمونشی. قال سمت و عبد الله عليه السلام يقول إن الله ينزل في يوم عرفاء إ ن أ و ل الزوار ل ل أ ر ض على جمل ا على ج م افرغ ل أ ق أفرق ق ب يصال بفخذيه ع ل أ ر ا ف ا ت يمينا وشمالا فلا يزال كذلك حتى إ ذ ا كان عند المغرب ويقر الناس وكلا الله ملكين بحيال المعزمين يناديان عند المدينه ا ل ذ ي ي ر أ ت ه يربي ا سلم سلم ورب ا ل يسعد إلى السماء ويقول ج ل ا ل آ م ي ن آ م ي ن ربا ل ع ا ل م ي ن ف ذ ل ك ل ا تكاد ترى سريع ا ب س و ا ت ولا كبير ا جمال ترجمه أفرق هیچ کجا نگفتن که زیده نرسی از قلم هاییشی هست بسار و درجات لسفار مالی کرد از شما از ماید بسار و درجات و صفار مجد دارم صفحه دویست دا و شیست روایت پانزدان البرحان مالی شمای مالی مالی مالی, مالی, مالی. نه تفسیر البرحان اومده من جا هم بسار و درجات دارم هم البرحان البحار مالی شمای مالی مالی مالی البحار خود در باید چی اومده؟ همین عبارتون أ ل ك ن سليمان بن خالد ونبي <Challenge> <أنا> حزيء... الله في يوم عرفة و الله ونعم الله ونعم الله ن ع م الله ونعم الله ونعم الله ونعم الله ونعم الله ونعم الله ونعم الله ونعم الله ونعم الله ونعم الله ونعم الله و ن ع ا الله ونعم ا ل و ع م الله ونعم الله ونعم الله ونعم الله ونعم ا ل ه ونعم الله و ن م ا ل ل و ن ع نگاه کن موزو موزو نشان موزو نشان می‌سی کتاب نشون می‌دهی موزو کاملاً کتاب مال از سوکی اما با خال کی چی گفته ما کلام می‌گیم مگه من می‌گم یسته یه لامو مسی می‌گی سرعت سعی هست یا نه سنت خویلته موضوع که شو سنت صی نمیشد موضوع که شو سنت صی نمیشد. من دنبالش برم بی ما دکتر که تو بهیتی شافینه می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می‌می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 オーバーでしょ アイトラビアザラジャーからシェフをアルバニーと呼んでいると呼んでいると呼んでいるとんいといいると呼んでいると呼んでいると呼んでいいと呼でいると呼んでいるいると呼でいるいと呼んでいると呼んでいると呼んでいると呼んでいると呼んでいると呼んでいると呼んでいると呼いいと呼んでいると呼ん فقال فيما ي خ ت ص ر ا ل مع العلماء ف ق ل ت لاربي ف و ض ع ي د ه بين ك ت ف ي حتى وجدت ب ر د ا ن ا مليء نعلمه ب ن ي سعيد روسل تشكيلها مختصرة ل اساسات سعيانه ي أ فاي ترابي نعم دقيقه نعم داريكو يجيكي バスマスアレミンマスメメメネセイ。 私はあーたが大好きな場所を efecto つすね ولكن امام ا ل م س ل م ن ا ه و يحتاج ل ى م ن ب م ويعلمون انهم يحتاجون الى مسلمين خب در هر دو این رو سعی او اعتقاد داشته است خداوند سوار بر شدود. هدیه جماعی که راکته سعی. خوب در هر دو اون این فهم خودش بوده. خب شما فهمیده تیمیار پایی می دونید؟ نه در مولیه هدیه نه سعی. در مولیه هدیه. شروع خطا می کنند. خطا سعی. این شوده برو تو شو اتاس روایتی ده. با این مضمون که خدا از آسمان می آید سوار بر شدود. آقا یه براتیمی بگو سعی کن. سوار داشتیم چی مادری؟ جنگش نبودی. من نگذاشتم. اگر اومشی نیست، چیکار استاد؟ اگر اومشی نیست، چیشو آبادی کی؟ که گیشی است. استاد اگر اومشی نیست، بقیه انتقام دادن داره شو تو نیم مدت نبود، بسواره مدت خدا جامد داره. نبود، بسواره مدت نبود. شیش رفتم. که تو هر ماه جایی که واداموزه دارم، کنون بسیار شیعه نگه می‌دارم. این حدیث که در کامل زیارت آمده که نازل بر الله جالشانو آمده ایادت امام هزین وقتی بدونی آمده حتی سر شان ده سرگرفت این این چیه نتاجشون نازل بر الله جالشانو نیست ده کشیبان ده کشیبان آمده ایادت حضرت فاطمه وقتی زایمان کردید که در کامل زیارت آمده نیم نیم بود کامل زیارت نکردی یه حدیث دیگه هست میگه نازل بر حضرت الله جالشانو بجای ملایکه نازل شد به زمین راست تر قبر امام خمینی. این چیه دعا کردن حتی این نازل شد. یک خداز جاریت میکنه بر قبر خمینی. نزول داره چی؟ مرو بکن کاملا جاری بکنید. خرابات منمیگی تو بتایم آنیم. آن روح. پیامبر. آن روح هم رب تبارک و تعالا ویسافیه ویسافیم ویکوعدون ما علاس علاسرین واحده. اتحاد حکم العبودیت مع حکم الربویت. شیبوصینو سيفي ابرار دلال الماما و ي م د ي ن ة المعجز الباب الخامس ورشلون ا ل سخيا اصحابه من ابهامي وسقيا اصحابه من ابهامي واتعامل زنا وسخن م ش ر ا ب ه م سيفه الابرار ج ل د و سفاي سدسين و اصحابه ج ل د ي ن او د و ا ب ا ر ا ابارادر ا ب ا ر ا ر ابارادر ابارادر ا ب ا ا ر ابارادر ابارادر ا ب ز ر ا د ر ابارادر فكدرا شاهد ا ل ه ا ل م ل ا ل م ا ل م ل ا ل م ل ا م ل ك ه ا م ل ك ه ا م ل الملكه ا ل م ل الملكه الملكه ا ل م ل ا ل م ل ا ل م ه ا م ه ا ل م ل ه ا ل م ل ا ل م ل ك ل م ا ل م د ي ن ة ا ل م ع ا ل م عن د ل ا ل ل ا ل م ب ر ي ق ا ل أخبر ا ل م ل ك الملكه الملكه م ل ك ه م ل ك ه الملكه الملكه ا ل ي ل ك ا ل م ل ك ل م ل ك ه م ل ه م ل ك ه ا م ل ك ه ا م ل ك ه الملكه الملكه ا ل م ل الملكه ا ل م الملكه ا ل م ه الملكه ب ل م ل ك ه الملكه الملكه ا ل م ل الملكه ا ل م ل ك ا ل م ن ك ا ل م ل ك ا ل م ل ك الملكه ا ل م الملكه ع ل م ه ا ل م ل ه ا ل م ل ه ا ل م ل ا م ل م ا منع الحسين و أ ص ح ا ب الماء نادى فيهم من كان زمان ف ل ي ج ي ف أ ت ا ه رجل, رجل فيجل إ ب ه ا م ه في راحه واحدهم فلم يزل يشرب الرجل حتى ارتبوا فقال ب ع ض ه م والله لقد شربت شرابا ما شرب احد من العالمين في دار الدنيا فلما قاتلوا الحسين فكان في اليوم الثالث عند المغرب أخذ ا ل ح س ي ن ر ج ل ا ش خ ج ل ان ي ن هناك ا ش خ ا ل يجب ا يكون هناك اشخاص ي ب ا ئ ه م ف ك ا يجب ان يكون ه ن ا ل اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ي ك م ن ه ن ط ع ا م ا ل ج ن ة ثم أتى ا ل ج ب ا ل يكون ا ك ا ش خ ا يجب ان يكون هناك ا ش م ا ص ن ي ن إ ل ا أ ط ش خ ا ص يجب ان ي ك و ه ن ا ل اشخاص يجب ان ي ر و ن هناك اشخاص イブラ ا ه ム م وموسى وعيسى وجميل الأنبياء ومن ورائم المؤمنون ومن وراء الملايكا ينظرون ما يقول الحسن قال فهم بهذا الحال إلى أن قال فشو م ش ا ر رضا بدي و ي س ي ن د ر س ر ي ر, <على S 2> ر. ج ن ج س ت ي ه ا ي و إ م بقش مصابين بعده ي ا ل و ا ي ت ا ب ع ا ت شبههم بهذا الحال إلى أن يقوم القائم إلى وإذا قام القائم و ا ف و فيها بينهم ラ ل ラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブ م ブラブラブ م ブラ ن إلا ブラブラブラブラブラブラブラブラブラ ل ラブラブラブラブラブラブラブラブラ ي ラ ا ラブラブラブラブ ا س ي ف ا لبريق ا م ل ا ن ا للمعاد م م ا ر س ا للمعاد سيفه للمعاد ممارسه للمعاد ا ا م ل ا ر س ه للمعاد ممارسه للمعاد ممارسه للمعاد ممارسه للمعاد ممارسه للمعاد م م ا ر س و للمعاد م م ا ف س ه و ي للمعاد ممارسه للمعاد ممارسه للمعاد م م ا ل ل ه للمعاد م م ا ش ي ء همین سعفی و استیبارتیش همین یکشیگان داره نصف کدوم نداره نصف و حسین همه میاد یازور و حسین نصف و حسین ویا کدوم ندارن آن لعاتالی یازور نداره نساینو نصف و ویا کدوم نه ولادترینم آقا ندارم این آدم یا مفضل هزی و الله رفته کتاب دلائل که همه از اون امکاناتی میتونن آلمان نداره این دروغ زیاد به <laughs> <laughs> ما میبنده اگر دروغ بپره بندم اینا راتش میگن این کدوم از این دروغها به ما بسته نداره تو اینکتا خب فلما كاتر ل ا وسيم ونهاديس ولغه ا مبيعيه ا فلما قاتل ل ا ح س ي وكان في يوم السادس اندل مغرب اقعد رسام رجل ا رجل ا منهم ف ي و سيمبي اسمعي ا ب ا ئ ن م ف ي و زي بهو ا رجل بعد ا ل رجل ف ا ي ك او دون هول او سمى يدرو 私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、そそれを見つけた فهم بهذا الحال الى ان يقوم القائم عليه السلام ف إ ذ ا قام القائم و ا ف و فيهما بينهم ع الحسين عليه السلام حتى ياتي كربلاء فلا يبقى أ ح د سماني ولا عظيم من المؤمنين إ ل ا ه ف به يزوره ويسافر ويكون موال السريف فوق ان ب ا ر ه هذا الكريم این باره تکاملی کتاب این نسخه اصلی ها چهاباشیش تا نسخه ای نه نسخه ای مال و تامون نسخه ای این نسخه ای ازیل این باره تغییر کرد این باره تغذف کرد این باره حالا کجای اونو حالا ما همین کتاب را اوردیم این باره تاگه نشون دادیم همین کتاب نه اونو همون هاچیانی باشند و نسخه ای خاطی تحسیش کرد من خودم دیدم نسخه شو از واقع کی ریان توش بوده من نگاه کردم تو تغییر نه توی انتقام نشده نیست یه ابجوم در کامل هست واقع تغییر کرده یه نیت مال اضافه دارم، می‌یه نیت مال اضافه ندارم. مورا عیت رابی مصدق آبیالا سایید بودی نه؟ سایید فضل الله. مصدق آبیالا. اون که توله آبیالا. که دوباره آبیالا. که دوباره آبیالا که موجوده. شما سیاره الان ولار اون هدیه سپرمان بیاد الان. شما یه لحظه. نه آبیالا. همه شموزه. ما یه هدیه داری میگه رهیت رابی فی آسمان سورة در شمس رفه امر دیده این دارم. توی نورا باش که دیده هدیه سه شدی. 私はですね。 私はそれでありません。<ペー> آره، الان من داری شما. خونه دیگه من اماده بیم. این روست روايات های که باستهده سعی مادام برای شما بگم یک این رواياتی. رأی تلاب بیفی صورت شابن امرد الله و قلّة جعد قلّة فی رود الخضراء ابزالو تأويلات اواج همه رواتهانو نکوش ما ابزالو تأويلات رواته من نکوش ما این این مورد ای ای ای این این این ابزالو تأويلاته فریب ازشون میشود این ابزالو تأويلشونی داره یه آدیسی بیشی ابزالو تأويلات مالی پیش کی همون عبیه علام مصلی عبیه علام نه ابزالو تأويلات عبیه علام رأیت ربی فی صورة شابن امرد ラビアンセブン、ライトラビフィーソーラシャベン・アムラ、ラウワフラ、ジャドン、カタトン、フィン、イバーバージャージ。 این روح یادی چهار دلار میاد؟ مسجد نگاه کن. نکار مالک. شاید. اگر مرا دنکی میاد. اینا یه. اینا دیزه نه اینها دیزه شواف داره. همون مضمون او چند سند دسته سهیه داره همیشه من دارم همین مضمون آماده شما میاد. همین مضمون رو. این مضمون هشتاد و نه دسته داره. آقا جم این مزمون هشتادو گیرد. هد کلی از مزمون هشتادو نهتاس نه ده. همش از موذات می‌باشد. موذاتش سیزده تاس. خوب. سیزده, سیزده تا سیزده تاس تنادش موذوی، هفت تا تنادش ضعیفه. چهل و شش تا تنادش، هفت تا خیلی ضعیفه. چهل و شش تاش یه مردال ضعیفه. دیس تو یک تناده است. حسن داره. دو تا رزمنی دو تا رزمنی همیشه اولیس بود. 私は私はそれを見つけることがでいます。 اما شو برایم خلاقا تو باید نا هر علمان ما علما. میدید قلمان اینجا در حدیث و موضوع بردیم شی؟ شد. شیلوش شد. پافشا را بمیسید یک وقت در بوشکش بردیم باش یل از هفت برد آقای باشیش کنید آقای قصیل یل از هفت بردیم بردیم آقای باشیم این روابط ماش میگردم غیر دزدی رو دیش میننیم. و مونکل غداره در فسیره. ایلام نو واقف. شتاب عربانیش رو واداری میکنیم. نه نه نه. فسیره عربانی. خبر زیبا عربانی ماجد دکان سیزده چه خبر مونکل؟ اونو نمیگم من. این روابط. همونیه تا اصل میگیم. چی نمیگم؟ اینه بیابان تازه پی نره. کجا نام را تنها لیل تلخ است. خبر خبر مونکل. کجا نامش کردی؟ زن همین. نه فسیره عربانیش رو. کجا موتی؟ آجان. یه عرفانی شما. یه روابط فزیات ممکنه ست تا سنت داشته باشه. نوت تا شهری. شما در سهر اعلان و برا کدوم آمه اتناه برده. اونو برشون. انا این کدارا بگم یک از ما. ما داری میریم. هدیش موضوع دیگر. شاییش پا فشاله بکنیم. این اولامای شما این مستر حدث ممکره. حدث حدث حدث احسر احسر. داریم جالب بگیم اصلا اولامای ما اکثر حدیث مون کرده حدیث مونده حدیث که مخالف قرآن باشه مک آخه اولامای ما داریم دیگه پس شما که میگید ما علم رجال داریم اولامای شما باستانه دستهایی هم که برای تأزی کرده میگیم کجا گفت که حدیث مخالف قرآن باشه بعد تبریز است بدن علم رجال داریم چرا داریم؟ میگم چه اسنی میگیم که مخالف قرآن؟ مخالف قرآن ما قرآن است شما صبر ب علی از ماشین شما عبارت فیروز الله نوربلا فیض نکردم قدم گام تو اون یک زج ریز داشت شامی نداری زج دی نه آخرش معلوم حرف داده بودم از خبر مândوش... می نیایم آخرش چه خبر می کند یکی چه تارک فیض نکرده فریدی اگه در مورد پرمردیگر خبر مونده این بر نوار گفت کدوم سه بگم شش استنبود اگه پیشتر نباشن بسیار عالی نبوده بیشتر ساده است یا کسی کسی چکش میگی خبر خبر میگی ممكن هم مشکلی داشت که نمانیار و مراکده داغ ممکنی زایی نیستش ممکنی این تنهایی نبوده نداره. خب این یه گزینه ییه چیزی داره اون واسی میشه یه چیزی ممکن است مال دادن که می‌تونیم شما گفتی 30 ساله می‌آدیس چند ساله دزدیکی داره پنجاه تا چند تا؟ اینا گوش کن بیرون شدام می‌میسکم این ها طول داره دیوان صغیر صافی صد و پنجاه یک میگه در مذهب آریفان آقا الله علی علی الله حس این چه هفیه؟ اینو چی گفته؟, گفته؟ اینو موسیقی؟ چی گفته اینو بار؟ خودی کی چی؟ چی گفته اینو؟ این شیعی گفته. اشکالی نداره. داره رات دستگون میکنه. خلو و این کار هفیه که این دارم از اون مراقبون ندارم. اوه چرا اون نمیگه موسیقی؟ ما غالیا رو مشکل می دونیم از کیم گفت اش اقع... مگه غالیا رو کسری همهای اولمانی ماست در همه رسانلار که غالیا مشکل کستن که برای من از پیدا کنی نکش می نرمیم از رسانلار پیدا کنیم از کدای خامنه ای باش من میام خونه از کدای خامنه ای باش من میام خونه برای من پیدا کنیم کدای خامنه ای کتاب تعارض و نیازات همون اول سوال کردند کسی که از تری خودا بدروغ می شیم که کدای خامنه ای نیست کدای خامنه ای کدای خامنه ای که می دونی اگر زنده بزرونی کموشی نه شوان مورد زنده ایلی که هزی روزه هزی روزه هزی روزه هزی روزه هم هزی روزه هزی روزه هم هنگر زنده در عشق قبازی هم بخشو کردیم راستی اون فالی درست قبلا میمونم لست میتونید چه؟ یا برای بفتی اون دیر هم دیگه برای بفتی